بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكّل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته وامتسال أوامره وجتناب نواهيه كما يقول أمرنا سبحانه وتعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها و خالق النس بخلق حسن اي خدا بخشا مساری السباح از برای ما بمفتاح الفلاح یعنی ای دادارگیتی دادگر برگوشابر ما تو درهای سحر از کلید اللطف درها باغس کن بهرما سامان ر رحمت ساس کن ای خداونده من از دست الرجا کوفتم در واضع رحم تو ترا درگزار از من تو ای رب بلورا هرچه کردم از گناه و از خطا لغزشی که از من بیاید آشکار درگزار از من تو ای پروردگار زین که هستی سرور و معبود من قایت هر خواهش و مقصود من خود چسن میرانانیایی پرورد گار بینوای کامدت با استرار از گناه خود گریزن آممده در خطای خود پشیمان آمده. هر چه خواهی می کنی تو هر زمان ای در خدای مهربان هر کرا خواهی تو عزت می دهی هر کرا خواهی تو ذلت می دهی هر که خواهی هر که را خواهی تو روزی می‌دهی بیش از حد اندازه مقدارش دهی ای خدای پاک و ای رب ودود از فرازین بر فرود آور درود بر محمد مصطفی و آل او علیه الصلاۃ والسلام آن گوزید گوهران پاک خو بشنو وا اعظم پذیرا کن دعا دشمنانم را گوزین بحر فنا پس بناکامی نگردانم زجود از گزید بخشش خود ای ودوت از خداوند قادر ذوالجلال کریم حنان منان خداوند رحیم و رحمان طلب می کنم قبولی طاعات و عبادات جمیع اهل ایمان رو طلب می کنم مزید توفیق توفیق حرکت در مسیر بندگی او را که تنها راه سعادت و فلاح دنیا و آخرت برای همگان است طلب می کنم خسن آقبت را برای همگان بویجه و بلخص پیران من طلب می کنم شفای کامل را برای همه بیمارانی که نهایت تلاششون رو در اخذ اسباب شفا کرده اند طلب می کنم رحمت و مخفرت خداوند رو برای همه اموات جمع حاضر و اهل ایمان طلب می کنم توفیق بیشتر رو برای جوانان که بیشتر و بیشتر به سمت دین خدا و سنت رسول علیه السلام روی بیاورند تا الله هم در دنیا و هم در آخرت اهل خیر و اهل فلاح و اهل سعادت گردند بزرگواران به اختصار با یک سوال این خطبه را آغاز می‌کنم و ان شاء پاسخ این سوال انسان در زندگی خود با این سی مختلفی داشته باشد یکی از انتخاب‌هایی رو که من پیش روی شما عزیزان می‌خوام مطرح کنم که شاید هم آشنا باشد و هم تا حدودی هم مبهم این است که ما در حیات دنیا اگر قرار باشد کلید باشیم و یا قفل کدام رو انتخاب میکنیم میخواییم شخصیتمون یک شخصیت کلیدی باشد که گشاینده درهاست باسکننده گراه هاست از خودمون و دیگران یا میخواییم شخصیتمون قفل باشد یا هر دو میخواییم هم کلید باشیم هم قفل چون کلید بدون قفل که به درد نمیخوره قفل بدون کلید هم به درد نمیخوره صحبت ما در این نوبت پیرامون کلید و قفل است کلید و قفلی که همگان میشناسید و الان به شکل های متنوعی هم ساخته میشه ولی کسی که دزد بود به حال این قفل ها رو به رسمیت نمیشناسد و قطعا اونها رو با کلیدها و بعضا شاه کلیدهایی که داره باز میکنه عرض این است که محور و محتوی کلی خطبه های جمعه تقواست و خروجی تقوا عبارت از این است که ما گشاینده بومبست ها و گره ها و درد خودمون و دیگران باشیم و البته قفل هم باشیم برای چیزهایی که بایست باید قفل شوند کلید باز کننده درهای طاعت و بندگی و قفلی که درهای گناه و معصیت را بر روی ما و دیگران ببندد بحث کلید رو که در قرآن فراوان داریم که کلید خزائن سماوات و عرض در دست خداوند است مفتاح همون کلید است بحث قفل را هم داریم اما من میخواهم فراتر بروم در این باب که چه کار کنیم هم کلیدهای خوبی باشیم و هم قفل‌های خوبی کلیدهایی برای اینکه باز کنیم درهای خیرات و برکات رو بر روی خودمان و دیگران و قفلهایی برای اینکه بربندیم درهای گناه و انحراف و تباهی و معصیت رو بر روی خودمان و دیگران و تقوا یعنی همین که در سوری موارد که طلاق خداون جل جلالهو می از خروجی ها و سمرات و برکات و تقوی گشایش ایجاد کردن است و من یتقله یجعل له مخرجه بمبست ها رو تقوی می گشاید بمبست ها رو تقوی باز می کند بحثی که در جای جای قرآن بهش پرداخته شده و تا حدودی هم نا نیست برای همگان که ارتباط تنگا تنگ داره با همین بحث قفل و کلید که انشاءالله یادتون نره در ماهای آخرین سال هستیم ببینیم چه جاهایی رو ما میتونستیم باز کنیم گره ها مشکلاتی رو از خودمون و دیگران و به هر دلیل باز نکردیم و چه جاهایی رو میتونستیم ببندیم و قفل بزنیم بروی خودمان و دیگران که دوچار دوری از مسیر خیر و بندگی نشویم و این کار رو نکردیم این روزهای پایانی سال روزهای محاسبه است همه جا محاسبه میکنن بانک ها سال مالی شون رو باید بکنن شرکت های مختلف محاسباته ولی دوست دارم اینجا هم یک کم به خودمون بپردازیم خودمون رو محاسبه کنیم یه سبک سنگینی بکنیم چه جاهایی بایستی می و چه حرفهایی باید می و چه دوستیهایی باید میکردیم و نکردیم از همین الان قرص و محکم پیمان بدیم به خداون جل جلاله که کمک ممکنه در این روزای اخیر فکر کنیم دیگه با تمام شدن این سال همه چیز تمام میشه و قیامت میاد. فکرش که اشکال نداره دیگه حالا نترس ازمین که ست سال دیگه امت کنی خود سال دیگه امت کنی که چی بشه هی قفل باشیم هی گره بزنیم یعنی که گره باز کنیم تعبیر خوف و رجا رو همین بزرگواران شنیدن خوف مقابل فارسیش ترس است و رجا مقابل فارسیش امید است بیم و امید یا ترس و امید شیخ سعدی علیه الرحمه زیر بنای شخصیت انسان موحد و مؤمن رو در همین دو چیز می داند موحد شو ریزی زرم در برش چو شمشیر هندی نهی بر سرش امید و هراسش نباشد ز کس بر این است مبنای توحید و بس به کی امیدوار باشیم و از کی بترسیم این دو تا سواله دو تا سوالی که لیدی در حقیقت و کلید و یا قفل همه نیازها مشکلات شخصی خانادگی اجتماعی سیاسی فرهنگی کلید و قفل هر کدام از این مشکلات یه جا مشکل رو بحال کنه کلید است یه جا باعث مشکل رو پایان بده میشه قفل خوف و رجاست ترس از خدا و امید به خدا فقط و فقط در وصف اهل ایمان فرا آیات متعددی از قرآن رو ما داریم که من اشاره می کنم فقط و به اصل مطلب برمیگردم که خداون جل جلاله خطاب به اهل ایمان در سوره مبارکه اعراف می فرماید ولا تفسدو فی الارض بعد اصلاحها و ادعوه خوفا یعنی پروردگار رو بعد از اینکه نهی میکنه از اینکه در زمین بعد از اینکه اصلاحی اتفاق افتاده ما افساد نکنیم و می فرماید پروردگارتون رو بخواانید با ترس و امید خوفا و تم ترس داشته باشید از اینکه شما رو تحویل نگیره و امید داشته باشید به اینکه شما رو تحویل بگیرد. و این دو تا باید باشند باشد. امیدها همون کلیدها هستند و ترس ها همون قفل ها هستند. میده رو در یک نوبت دوستانی که تشریف داشتن میدانن من تشبویع کردم به گاز برای هر وسیله نقلیه مثل ماشین یا هر چیز دیگه و ترس رو من تشبویر کردم به ترمز برای وسیله نقلیه و این دوتا حتما باید باشن اگر الان دیگه ماشین های پیشرفتهدن اتوماتیک دیگه کلاج ندارن پس میشه ماشیین بدون کلاج داشت اما نمیتونی تصور کنی ماشین رو که گاز نداشته باشه یا ترمز حتما باید دوش باشه برای اینکه یک حرکت اتفاق بیفته و ما مقصد برسیم وجود ما هم بایستی با پر از این ترس و امید باشد تا بتوانیم به مقصد برسیم امید و حراسش نباشد زکست بر این از مبنای توحید و بس در تعبیر دیگر سوی این بار که در وصف احلیمان یرجون رحمته و یخافون عذابه امید به رحمت دارند و از عذاب می ترسند وایات دیگری از این دست فراوان ما داریم بحث ترس و امید و خوف و رجا نقطه ای که اینجا جای توجه هست برای اینکه ممکنه سوال ایجاد بشه چطور خوف و رجا می توانند کلید گشاینده درهای بسته برای ما و قفل کنند درهایی رو که نباید ما باز کنیم چگونه یک راه بیشتر نداره باید تمرین کنیم مشک کنیم تمام وجودمان پر از امید به خدا بشود و بس به هیچ کسی و هیچ چیزی غیر از خدا دل نبندیم و امید نبندیم این یک و مشق کنیم و تمرین کنیم تمام وجودمان پر از ترس از خدا شود جایی در وجودمون دیگه باقی نماند برای ترسیدن از غیر خدا همه امیدها و ترس هامون رو به حساب خدا بریزیم کامل اونجاست که مو میشیم وقتی این چنین شد هیچ در بسته ایران نمیابیم مگر اینکه با این کلید تقوا که دو بخش داره یکیش خوف یکیش ترس اگه دقت کنی تقوا هم همینه بهترین تعریف تقویلا جان تعریف هم همین است امتصال اوامر یعنی انجام اوامری که خدا فرموده و اجتناب نواحی و دوری گزیدن از نواحی خب امتثال اوامر کلید است. باز کنیم درهای طاعت رو و از هیچ خیری ولو اندک باشد بفرموده پیامبر علیه الصلاۃ والسلام روی گردان نشویم. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقا اخاك بوجه طلق او تليق. هیچ کار نیکی رو کوچک نشمارید. حتی اگر این کار عبارت از بوده که با روی گشاده برادرت رو تحویل بگیرید. ما دو جمعی قبل در شرق تهران بحثی رو پیرامون که یک کلمه داشتهیم کلمه نوازش و نیایش ما باید اهل نوازش باشیم اون هم نوازش ایمانی اون هم نوازش رحمانی چشمان ما باید نوازشگر باشه زبان ما باید نوش داشته باشه ننیش نیش نوازشگر باشه گوشهای ما باید نوازشگر باشه وقتی کسی صحبت میکنه با اکرام و احترام به صحبتاش گوش بدیم هر چند؟ فک کنیم این صحبتاش کم ارزش یا بی‌ارزشه. کاری کنیم دیگران در کنار ما احساس احترام و ارجمندی کنند. این دیگران از خانواده شروع میشه. ما بحث مفصوتی رو اونجا داشتیم و شاید به شکل این بحث قفل و کلید ما متصل و هم بحث نوازش باشه. آقایون در خانواده هم بایستی کلید باشن و هم قفل خانم ها هم بایستی هم کلید باشند هم قفل و بچه ها رو یاد بدن کلید و قفل باشند هر دو هر جا قفلی دیدید ناامید نشید قطعا کلیدی دارد و هر جا کلیدی هم بود امید داشته باشید یه قفلی هست این کلید باید بازش کنه الان توی جیب همه شما کلید هست با امید این که بعد از جمعه تمام شدید در منظورو با اون کلید باز میکنی بالاخره ارزشمنده. حوث باشه با کلیدهایی رو که خداوند در اختیار ما بلانه بندگانش گذاشته در خیر و طاعت رو باز کنیم در آثار اهل صلاح آمده که همیشه دعا میکردن که از دعاهایی که اول روز که آغاد میشد میکردن همین بود اللهم مجعلی مفتاح کل خیر و مغلاق کل شر خداوندها من رو کلید باز کننده همه خیرها و درهای خیر قرار بده و من رو قفلی قرار بده برای همه شرها هر جا که شرری بود در رو ببندم مجلس غیبت شروع میشه در آده بعضا کسانی هستن که سبحانشون رو با غیبت آغاز میکنن خب اینجا ما باید کلید باشیم یا قفل بگید بعد قفل باشیم بعد اجازه ندید میدانا پیدا کنه و کسی حدیث پیامبر میخوان علیه الصلاه والسلام آیه از قرآن رو تفسیر میکنه اینجا باید کلید باشیم یا قفل جوابه کلید باشیم در رو بس کنیم بیان افراد بشنون ولذا ما موافق نیستم همیشه نقشمون کلید باشه باید نقش مؤمن گرفته از تقوی باز کردن درهای طاعت امتصال اوامر بستن درهای گناه و معصیت اجتناب از نواهی ولذا من الهامی که گرفتم از کلمه تقوا گرفتم برای این که شخصیت اهل تقوی ایمان باید هم کلید باشه هم بعضی از اوقات ما کلیدیم فقط بده بعضی اوقات هم قفلیم و بعضا قفلهای ظاهری هم داریم ما طرف میاد با روی گشاده ما رو تحویل میگه ما عخف کردیم این قفلیم شما باید چی کار کنیم باید روی گشاده تحویلش بگیرید بعضی از اوقات از ما کمکی خواسته میشه یا مادی یا معنوی قرش و محکم دستانون رو گرفتیم که کسی به ما نزدیک نسه اینجا باید چی باشیم؟ باید باز کنیم این دست را. لب فرو بند. کف پرزر زر بر گشا. تعبیر مولوی است. بخلتن بگذار. پیش آور سخا. ترک شهوت ها و لذت ها سخا است. هر که در شهوت فرو شد بر نخاست. لذت در این باب سخن فراوان است. اگر ما شخصیتمون پر از خوف از خدا و پر از امید به خدا شد آنجاست که این گره هایی رو که به ظاهر میبینیم گره هست خیلی آسان میشه باز کرد این درهایی رو که فکر میکنیم بومبسته با, با آسانی میشه گشود و لذا در این باب باعثی هم گشاینده باشیم و هم قفل کننده تا حالا ما چقدر در این باب جلو رفتیم و موفق عمل کردیم من نمیدونم این کلمات سادهی بود من ارز کردم به زبان کاملا واضح و روشن برای این که اگر تا این روز از این سال که بیشترش رفتی یک کمش مونده نقشمون در هر جایی که هستیم از خاناده گرفته بریم محل کار بریم توی جامعه سعی کنیم هر جایی که میتونیم گریر رو از مشکلات رو کسی باز کنیم الان مثلا گفتن خانادهی در مزیقه مالی بود و دوچار مشکلات عدیدهی شدند دعای رفع گرفتاری خب این فقط ما دعا کنیم بک... کفایت نمی کنه باید سر کیسه ها هم یک کم شل کنیم افراد اینجا باید مسابقه بذارن این خاناده کیه؟ به ما معرفیش کنید اینجا باید کلید بود برای اینکه گرهش باز بشه گره اقتصادیه، گره فکریه، گره روحیه، گره اخلاقیه یکی از دوستان می گفت من خیلی عبادت می کنم اصلا لذت می نماز اول وقت می خونم سنت رواتم می خونم حلاوت عبادتی که در حدیث گفته شده شیرینی ایمان رو من هنوز مزه نکرده آیا ایمان شیرین نیست؟ آیا فرموده پیامبر علیه الصلاة والسلام خلاف واقع از بالله؟ اینجا مشکل در منه به تعبیر اعلامه بوسیری قد تنکر الشمس و زو الشمس من رمدهد ی وقٹ چشم ما مشکل پیدا کرده خورشید رو نگاه میکنیم میگیم خورشید نورش خیلی تنده چشم من مشکل پیدا کرده و ينكر الفم طعم الماء این آب آب گوارا و, گوار و شیرین نیست من دوچار بیماری میشم آب رو میخورم تلخه تفسیر اس کی از, از, از من یا از آبه تفسیر از منه به واسه مون جنب باشه اون که حلاوت عبادت رو مز مزه نکردیم وقتی می آییم نماز جمعه با یک حال می برگشتیم اگر حالتمون عوض نشده باشه ولو اندکی باید سید دقت کنیم و تمرین کنیم برای اینکه ایمانمون رو مجددن نو کنیم تازش کنیم باید کسی در کنار ما می نشیند و هم صحبت ما می شود حالش عوض بشه چون گفته شده با کسی هم کنید که نگاهش در شما نافذ باشد من لم ينفع لم ينفع کاللحظه پناه بر خدا یعنی کسی که نگاه کردنش به شما نافع و مفید نباشه با نگاهش احساس امنیت و آرامش نکنید با نگاهش حالتون عوض نشه با نگاهش گیره از مشکلاتتون باز نشه فقط نگاهش الفاظ و کلماتش به درد شما نمیخوره. خوره آنان که خاک را به نظر کی می آکنند به نظر کی می آکنند خاک هایی رو که ارزشند اما ارزش میدن اعتبار می آیا با ود که گوشه چشمی به ما کنند از صحابه نقل شده که پیامبر علیه صلی اللہ وقتی که در میان ما بود نگاهش رو تقسیم می کرد میان ما به یکی بیشتر از اون یکی نگاه نمی کرد مبادا اون یکی دلش گرفته بشه و هیچ کدام از ما احساس نمی کردیم پیامبر علیه الصلاۃ و سلام یکی از ما رو بیشتر از اون یکی دوست داره اگرش جو در دل به پیامبر و خدا مربوط بود یه جایی می فرمود محبوب من اح اح اصحاب ابوبکر است یه جا می فرمود عمر است یه جای دیگه مطلب دیگه می فرمود این جای خود داره این تقسیم نگاه و این نگاه ها و سلوک پیامبر بود که صحابه رو صحابه کرد فقط نشوش همیشه سخنرانی و صحبت کردن یه وقت حرف زیاد خسابت قلب بیاره چه برای من چه برای شما این که جمعه یک بار دیگه استانداردیه که خداوند جل جلاله او تعیین کرده یا الی الذینا آمَنُوا و لِلصَّلَاةِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِکْرِ اللَّهِ تمام شد جمعه یک بار کفایت میکنه مصرف میشه این تقوای ما در طول هفته تقوایی که اینجا حداقل ساعت بیشتر نیست 1 ساعت اینجا ما کسب تقوا می‌کنیم در این 1 ساعت اگر توفیق شده داشت باشیم سوخت یک هفته رو تامین کردیم تا جمعه بعد جمعه بعد بایستی دوان دوان بیایم برای اینکه دوباره سخت گیری کنیم زاد تقوا برگیریم تزود فان خیر زاد التقوه چون تقوا الان با وجود این جامعه ای که ما داریم با این همه تنوع گناه و معاصی تقوای که ما داریم خیلی سریع مصرف میشه پس مرتب بایستی چیکار کنیم توش جمع کنیم برای اینکه اونی که مصرف شده جایگزین داشته باشه و خودتون میدانید چش ما یه جور تقوای ما رو مصرف میکنه گوش ها یه جور دیگه صحبت کردن یه جور دیگه در جامعه مثل رفتن و قااطی شدن با افراد عجیب و غریب یه جور دیگه تقوای ما رو مصرف میکنه. بخصوص جوانان عزیز اون جمع باشه. شخص اما ممکنه و شدنیه اینجاست اگر صاحب این تقوی به این معنا شدیم اون وقت اون حلاوت ایمانی اون حلاوت عبادی رو مضمت زه خواهیم کرد. نمیشه. در این حال خربوزم بخوریم و لرزم نکنیم بیمار باشیم بریم خربزه بخوریم خب نتیجه چیه؟ بدتر شدنمون. نمون خربوزه شیرینه لذت بخشه حتی برای بیماری که تب کرده دوست داره چیز خونک بهش بدن شیرین است اما مفید نیست دارو که به بی این بیمار بدیم تلخ است اما مفید است اینجا دارو کلید دیگه و خربزه رو باید قفلش کنیم به اون نمونه عرض کردم این رو ها نتیجهش میشه صحت و سلامت وقتی صحت و سلامت روحی و جسمی پیدا کردیم اون وقت حلاوت عبادت رو مز مزه خواهیم کرد اون وقت شیرینی رو درک خواهیم کرد میچشیم اون چیزی رو که باید بچشیم در غیر این صورت بخوایم همه خوشی‌ها رو داشته باشیم و در این حال آب از آپت نخوره اون وق همه حلاوتای عبادیام هم بیاد نمیشه طرفش این دو ساعت غیبت کنه و در پُستین مردم بیفته بعدش بلند شو 4 رکعت نماز بخونه خو این نماز معلوم دیگه نماز بی خاصیتیه نماز مطلوب و مؤثری نیست نمازی که بتواند خادم ایمان ما باشد و ایمان ما رو پوشش بده نیست ولی ز این باب جمع میکنیم صحبت رو تقوا در حقیقت منجر به ایجاد خوف و رجا در انسان می شود و خوف و رجاست که به ما میگوید که کلید <صفح> باشیم یا قفل یه جاهایی باید کلید بود و یک جاهایی هم بایستی قفل بود و در این باب سخن فراوان است این کلمات رو من عرض کردم خدمت بزرگواران باشد که بتوانیم از امروز نقش موثرتری داشته باشیم در خروجی های تقویی که ان خداوند به همه عطا و عنایت بفرماید برای باز کردن گره از کار خودمون و دیگران گره های خانوادگی شخصی اجتماعی و هر شکل دیگری و در این حال برای بستن درهایی که ما رو به گناه و معاصی مینشاند و میکشاند از او توفیق می طلبیم که ما رو در این مسیر یاریگر باشد یکی دو تذکر دادن خدمت بزرگان عرض کنم یکی شماره کارت جدید مشترک هیئت امنا که چاپ و توزیع شده دقت کنید روی کاغذ ها کلمه جدید تایپ شده باشه که ان حتما در جلسات عزیزان قرار خواهد گرفت کلاس های دارالقران هم در روزهای پنج شنبه برای سن های مختلف اینجا دایر است متولیان دارالقران فهمودن که ما عرض کنیم خدمتتون خداوند قاضر و متعال رو می خوانیم پیوسته ما رو مشمول هدایت خودش قرار بدهد ما را کلید باز کننده درهای طاعت و خیرات قرار بدهد ما را قفلی برای بستن درهای معاصی و گناه قرار بدهد چنان کند تا ظالم و قدر نشناس نباشیم دلهای را عاشق خود بگرداند توفیق عبادت مخلصانه رو به همه ما عطا بفرماید ذکرش را پیوست در ورد دلهای من قرار بدهد شرم از گناه و معصیت را در دلهای زنده نگه دارد حسادت را از خانه دلهای من بزداید دلهای من را شایسته دیدارش بگرداند لحظه ای ما را به خود وانه گذارد حلاوت ایمان و تلاوت کتابش را در دلهای قرار بدهد ذهنهای من را از کجندیشی و کجفهمی دور بگرداند شادی من را در رضایت خود قرار دهد بدل انجام کار چنان کند که او خوشنود باشد و ما رستگار اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولك